هم را بودید، من سباز که به خانواده همیراز بیدید بچه های دوست داشتید. ها اول حسنه رو شما اول اون موضوعاتی که در واقع به خودمون اون بوده به واقع رو یا به همکارمون یا به مدیر میگیم به مدیر میگیم من متشکرم از شما شما در تمام سال کلی به من کمک کردی همه جا من دیدم که برای هر حال و پاداشی به من داده میشد باید به به من داده جایی جای من باید دیده میشدن ولی امروز فکر می این سازمان برای من چیزی نداریم مجموعه دیگه باعث روش نمیاره من میخوام خب اینجا ترفم یعنی اول میریم رو اوزا ولی اکثر ما نمیخوام بگم تحقیق نکردم نظر شخصی بود ما ایرانی ها رو قدر نشناس دیدم بله. نسبت به قربه اینجوری نیستن و نسبت به خودی اینجوری یعنی تو محیط کارش تو محیط خانواده تو فامیلشون مدام در حال قضاوته این مسئله که میگه مرغ همسای قازه در ایران مال ایرانی هستیگه و, دخ... و مدام در حال قضاوته مدام در و همش سوه تبیر، همش سوه تعبیر مدام درگیر سوه تفاهمات هست و همینا باعث میشه که ما مردمانی میشیم که درگیر حاشیه و کمتر فکر میکنیم و من, من همش به خودم دقیقا ها میبینم چطوری بالاخره شما هم داده میشید دیگه تا میبینم تو جوره زندگی شخصی یا زندگی کاری دارم میبینم تو حاشیه به خودمه آها مثلا دوستم این ببین من دارم ماجرا ماجره ناجره چیپی ها. قابل حله، قابل فتح روش بگیم کنم، پس بگیم درگیر خودمون رو نکنیم وقت برایش نزاریم، انرژی مزاح برایش نزاریم حتی تو زندگی در واقع شخصیمونم همطور باید باشیم <تصفح> هاشیره ها بیشتر از از که تو زندگی ما تاثیر داره بله، بله خونه شاییم که با باید خب باید. ما یه مرور کنگه فقط بکنیم خاطر چون میاد که ما از جلسات قبلی گفتیم که در واقع رفتار سازمانی. یعنی چی آقای سلطانی هم تا دوستاتون بگیم در بکنی خودتون رو بگیم رفتار سازمان جا؟ یادم عشقان بگی در... یه درک دارید از مورد مورد مهم نیست من میکنم مفهومی رو که کردی رو رفتار سازمانی یعنی چی؟ مجموعه فرهنگی که توی یه سازمان برای انجام فعالیت ها هست روش میگم اون رفتاری تو سازمانی توسط کی انجام میشه؟ پرسنل بله پرسنل، مدیران بله یعنی در واقع در سطح فرد که این فرد میان در چه بله. سطحی؟ قروب گروه یا تینک میشه, میشه هم واحد تو اون که تو ساختار داریم میبینیم و بعد میاد بحث رو توی سازمان میشه اونجا بحث فرهنگ سازمانی که ما حالا با اون چیزایی رو که نمادینه مثلا لباس پوششی که داریم م? مثلا شما هواپیمایی که میریم یا مثلا میریم تو شرکت نفت یا میرین توی پتروشیمی لباسهای فورم رو اون یکی از چیزایی که نماد فرهنگشونه لباسهایه ولی اون اعتقادات ارزشها احایتشون در واقع تو اون کوه یخی اون چیه اون در واقع هست. اون زیره که نامشکود و پنهانه پس مطالعه فرد مطالعه رفتار فرد توی سازمان با توجه به عمل کردش کاری که انجام میده عملیات که میکنه رو رفتار سازمانی وقتی میگیم رفتار سازمانی توی سازمان که خود به خود که سازمان کاری نمیشه میگه سازمان میتونه دقی یه عنوانی باشه یه ساختمونی باشه یه آدمی بعد بره توش تمام بچم مطالعه کنیم شد. رفتار از ما البته میگن که سازمان هم شخصیت داره هم؟ دقیقا مرتبط به همون فرهنگشه یعنی اون ساختاری رو که بهش دادیم اون فرهنگی که در درون فرهنگ تو چند تا لایه داره دیگه فرهنگ در اون سازمان شخصیت یک سازمان میسازه پس مطالعه رفتار فر با توجه به عمل کردش توی سازمان رو میگه رفتار سازمانیز گفتیم توی بین مللیش چیه؟ خود توی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در کل جهان وجود داره فرهنگ‌های متفاوته وقتی ما میام رفتار اون فرد چینی رو نگاه می‌کنیم توی سازمانش در واقع رفتار بدی وقتی رفتار آقای شیوانی رو میایم و رفتار یه سی و پوست دیگری رو توی شرکت بین‌المللی بازاروار نگاه می‌کنیم دو تا در واقع تیپ فرهنگ وجود داره ولی خود اون سازمان در این چشمی که واقع شده اون یعنی فرهنگ ملیش که خیلی مهمه ها چون اون دو نفر فرهنگ می‌خودشون بدهن ولی بعد بیا تابع فرهنگ اون کشور بشن. پس مطالعه رفتار فرد توی سازمان با توجه به اقداماتی میکنه با هر فرهنگی تو هر کجایی که هست رفتار سازمانی. وقتی می‌بینیم تو شکر... توی شرکت‌های بین‌المللی توی کشورهای مختلف در جهان میشه حالت در موقع بین‌المللی. گفتیم که سه تا زیرمجموعه داره که بحث‌هایی که در رابطه با فرده. یکیش نگرش، بود. نگرش یعنی چی؟ یعنی چی؟ بگیم دیدگاه ما نسبت به یک موضوع بله یا رویداد یا یا نداشت هستی نه یا فرد, یا فرد. ما ارزیابی که در مورد شما داریم در مورد شی داریم،, داریم یا رویدادی داریم میشه نگرش درسته؟ ببینید با این کلمات گیجتون نکنه نگرش همون این که شما فکر میکنه در مورد من چی فکر میکنی آقا یبرانی؟ همونه در مورد این شی چه فکر م این چی تو درسته؟ وقتی میگیم شخصیت یعنی هر چیه؟ در واقع به صورت فیزیکی و روانی در ما وجود داره. که گفتیم شخصیت حتما وراست توش اهمیت داره، محیط و موقعیتش هم تاثیرگذار است. درست آقای شیبانی؟ بله. ادراک چی بود؟ درکی که از اون سیستم داریم. از اون محیط, محیط داریم برداشت، درکی که از اون محیط دقیقا. پس نگارش چی شد آقای ابراهیمی از؟ ارزیبی ما از فرد یا یک شیء یا یک رویداد دیگه ارزیابی داریم ما از یه فردی شیء آیه سلطانیان مشخص نگارشی شد ارزیابی ما از فرد بله محید. بله از فرد فقط فرد دیگه فرد رو داد اینجا موضوع شیء وقتی از محیط چیه برداشتو که تفسیر میکنیم، تعبیر می‌کنیم درکمون درکمون ادراکمونه شخصیتمون چیه آیه کاشانی عزیز شخصیت ما و عمل کدی که ما نسبت به خودمون محیطمون بله داریم یعنی دغدغه فیزیک ماست روان ماست ذهن ماست که گفتیم که چیا توش تاثیر داره از ذهنه خودش آنه آره دقیقا ژن ما وراست ما ات چه خانواده‌ای هستیم درست که <تصفيق> دیگه چی موقعیتی که توش به دنیا آمدیم موحید یعنی <تصفيق> که <تصفيق> ترکیم، روریم <تصفيق> قزوینی هستیم، کرمانی هستیم، شیرازی هستیم توش خانواده مذهبی، طبقه متوسط، طبقه در چه موقعیت و اجتماعی هستیم همه اینا در شخصیت ما همیتونی چه کنه تاثیر گذار شد بزار پس فراست موقعیت و محیط در موقع... چه میکنه شرایط روی شخصیت ما تاثیر گذاره دقیقا اه... از اون تیپای شخصیتتون تست شخصیت صدتایی که گفتم مال نئو بود البته نئو چند تا دیگه هم داره ولی اون تست شخصیت که صدتایی هست و خیلی وقتا تو اسسمنت سنترها استفاده میشه مال نئو بود گفتم اصنش یادم نمیاد بعد دوستان گفتن می فرد فرد نه توی گروه میشینه تو تیم میشینه درسته گفتم تفاوت گروه و تیم چیا بود چیا یادتون میاد بگید تفاوت گروه و تیم اه، گروه اه... چیز بود خود یعنی یک گروهی هستن که یک مجموعی از افرادی هستن که فرد میشینن در اون درون گروه خودشون مسائلی رو بحث میکنن، صحبت میکنن ولی نتیجه و تصمیم خاصی از سوش بیرون نمیاد گروه بودیم که در واقع همدیگر ما انتخاب نمیکنیم امکان داره که در واقع های مشابهی داشته باشیم ولی تیم باید حتما مکمل, مکمل باشه درسته بعد گفتیم که تلکه. بله گفتیم بله. بله. بله. که ما تیپ یونیک هستیم گزارش دیمون فردیه ولی فردیه. تو تیم هم فردی هم بفردیه. گروهیه <تصفيق> یعنی خروجی تیم دیده میشه درست؟ دیگه چی گفتیم یه چیزی که خیلی قهمه تعدادش هم بودش تعدادم <تصفيق> که بله گفتیم که اصلا وقتی گروه اصلا دوتا که بیشتر شده میتونیم گروه بشیم توی تیم گفتیم زیر دوزده تا اثر داره گفتیم دو به اضافه دو میشه چهار در کجا تو گروه یا تیم؟ تو گروه گرو آه، دو به اضافه دو که میشه، شش تو چی؟ <تصفيق> تیتیم یعنی همحفظایی. این همحفزایی رو خیلی تو ذهنتون بسپاره وقتی تیم یعنی همحفزایی، چون توامنگاه مکمل هم دارن، درسته؟ و چون در واقع برای جمع داره برای یک نتیجه مشخصی آقای کاشره هم تو کشاکر نتیجه مشخص تیم تلاش میکنه، همحفزایی به وجود میاد و در واقع اونجا توی گروه اطلاعات رو در بررسی کنند. ولی تیم در که من یه هدف مشخصی دارم که با همفزایی که با المثبتن باشه چیکار می‌کنم با تمام و مکمل بهش میرسم تصمیم گیری در گروه گفتیم یادتون شاید نیاز شاید بیاد بگید یعنی چی گفتم ما یا هم رنگ گروه میشیم یا از گروه چی میشیم جدا میشی. یعنی دو تا شکل وجود داره هم رنگ جماعت شدن یا گروهی درن خیلی وقتا شما با خانجمون ازدواش که میکنید اول هر تو دوستاتون رو چکار می‌کنید میارید یه زنگی میگذاره اگه شما بخ... با دوستای ایشون نشید یا خانوادش یا ایشون با خانواده و دوستای شما مشنششش چی می‌شین؟ یا خودتون تطبیق تدویق میدید با اون جمع یا چکار میکنید؟ از اون جمع چکار می‌کنید؟ خارج چی شما آره من بعد از اینکه ازدواج کردم دیگه تو اون جمع نرفتم یعنی در واقع اون زندگی مشترک که با اون آدمی که شما برای خودتون انتخاب کردید، دیگه نتونستی در اون جمع برید خیلی وقتا تو سازمان این اتفاق میفته دیگه ما در یک گروه قرار میگیریم ببینیم که در اون نمیتونیم با اون گروه کار کنیم تعارض داریم، تضاد داریم و چون خودمون رو همرنگ نمی کنیم یعنی اینکه در واقع روی حرف خودمون هستیم، دفاع می کنیم از تئوری خودمون، از نگرش خودمون، از ادراک خودمون، در واقع مجبور شیم از اون گروه چیکار کنیم؟ بیان بیرون یا با همرانگیشون بشیم، مچ بشیم باشیم باشون یا اینکه چیکار کنیم؟ اونها رو ترک کنیم اصلاً نمی‌شه تاثیر بذاریم روشون؟ خب اگه بذارید تو خب دیگه جدا نمی‌شید دیگه. انگل. ولی احتمالاً زمانی جرودا میشید که شما تک افتادید یعنی رای با اکثریت گروه شما تحت تاثیر قرار میده شما بودید کمتید یه ملخ سبز در مزرعه قهرهی نه نه بفرمایید من نرفتیم نخصیل خواهی شما یه جماع شنید که یه ملخ سبز در مزرعه قهرهی یا کل مزرعه رو باید به رنگ خودش کنه یا خودش رو از مزرعه جدا کنه واقعیتش اینه که شما توی سازمان ها چون گروهی کار تیمی نمی خیلی وقتا اونایی که منذره میشن و یه مدت این بعضی از کارپرانپون منذره شدن بلیه نمیتونه با اون گروه کار کنید ولی تیم همدیگر ما انتخاب کنید می میخواد میگن که این پروژه رو میخواد تعریف کنن میگن kia حازنه‌تون پروژه کار بکنه ها ما 5 تا 6 تا میشیم بعد میان نگاه می‌کنن خیلی خوب شما می‌تونید با ما کار پانی یه موقع هست که نه اصلا یه کاری رو می‌ذارن یه کاری عنوان میشه تو سازمان من شما آقای شیبانی آقای بومی ما مکمل همین با هم, هم می‌تونیم کار کنیم همینم قبول دریم توامری هم دیگه نمی‌شه ما می خودم پیشنهاد میدیم پروژه رو ما چیکار می‌کنیم ما بر برمیداریم برای همین هم هست که اگر تو واحد منابع انسانی تو واحد بازرگانی، تو واحد بازارینابی و فروش اگر تیم باشه، نه گروه تیم باشه، مطمئنا اون واحد کار میکنه؟ موفق کار میکنه و همه رو کاملا توی شرکت بقیه در اون واحد میبینن ولی اکثرا ما تیم؟ گروهیم مم. یه دلیلش همینه که ما جمگرا هستیم در واقع چشوری خدمت میگم ما ده عینی که تو جمع قرار می گیریم ولی اومیتگرا جمع گرا نه قمیاگر یعنی اینکه ما کل با هم باشیم ما اگه که هم چیز بخوام تو ترکای بیشتره منظورتون از ترک آذریه دیگه بسیدی دیگه آره دیگه مثلا ترک آذربایجان اصولا شما نگاه کنید اگه ما سه تا با هم باشیم شما دو تا ترک باشید خیلی وقت تو ترکی با هم حرف می‌زنیم با اینکه من دوستتونم با فارسیام شما میدونید ترکی نمیفهمم یعنی دست خودتونی، ناخداگاه حالا ترک تبریز اردبیل زنجان فر می‌نین ولی اصولا ترکا با هم دیگه یکمی ندارن یکم ایدونیو قومیت گرن یعنی اگر ما مثلا اهل مثلا عراقی ما عراقیو با هم اوکی میشیم هوای همدیگر رو داریم ترکا هوای رو داریم. لورا ها هوای همدیگه رو دارن یعنی قومیت گرایی در ایرونیا بیشتره تا جنبش بیشتر ما فرق گریم همین هم همینم گروه کار میکنیم که دلیلش این که تو سازمانه با خیلی کارتیمی نیست خاطر که ما اصلا چی هستیم فرق کردیم جاپونی های جودی میستن چون های شما چون اتفاقا جمگران شونم خیلی خوبه می چی میخوام بهتون بگم ما به دلیل فرق‌گراییمون خیلی وقت‌ها تو گروه قرار ما منظرم اینه که همون ها دیگه که تو ایران خیلی فرهنگیه. یه مقا بابیس فرهنگی تاریخی داره توی ایران. بله. خب اگه یادت باشه بعد از اینا رفتیم سراغ یه بحث خیلی جذاب به نام به نام ارتباطات. گفتیم ارتباطات. ارتباطات یعنی که آقا جان یک پیامی رو از در فرستنده به گیرنده میفرسته. من با کلام خودم با زبان خودم در واقع اون رو برمز درم و میفرستم برای م... یعنی همین وسیله شم اینه که تلفنی با هم صحبت میکنیم فیس تو فیس کانال اجرایشی ندیم مجروه در واقع ارتباط ها فیس تو فیسه گاهی ایمیله گاهی در واقع ویدیو کنفرانسه گاهی کتبیه گاهی یه نامسته گاهی یه نوشتاره فرق چه کار میکنه؟ فرستنده پیام خودش رو گیرنده میده و گیرنده درکی در از بحثی رو که پیامی رو که ما ما یه بار چیکار کار میکنه؟ بازخور میده خیلی وقتا سوی توی ما مال همینه که ما بازخور نمیگیریم یا بازخور نمیدیم برای همینم ویه تنم از زن. خیلی وقتا میپرسیم که آقا یکایشان من پنام شما رو درست گرفتم من محضور شما رو درست درکنم من با آقای شیوانی موقعی که پرسیدم با من دوست میشی میخواستم با همین صداقت به من بگه نه یا بگه آره چون می خواستم مفهوم عباد اعتماد رو که یکی صداقت هیچ کار کنه بگه یعنی به سراحت این موضوع رو بهشکافه داشت؟ حالا اگر که آقای با خنده آقای شیبانی میگه که یک بار منظور تو بد فهمیده که نه تو درست فهمی دقیقاً میخواستم که به همین صداقت چکار کنی بیان کنی یه بار دیگه با من داره باز می‌گیره با من چک می‌کنه که پیامش من درست گرفتم سوالی که می‌خواستی بگی میخواستی رو راستی رو مطرح کنی یا سه نه خواستم صداقت رو مطرح کنم بعد توی ارتباطات، اگر خاطر تو ارتباطات اگه خاطر چوباش کردیم سازمان ها، اصولاً یا رو به بالا یا رو به پایین یا سطح افواج. <تصفيق> یعنی من با مدیریت آرشده در ارتباط هستم یا با زیر مجمع یا زیر دست یا کنده دسته. بیشتر کارمند یا بیشتر مثلاً خدماتی یا که با همسایته خورده. اگه کارشناسم همسایته، اگه کارمند همسایته، اگه مدیر هستم می‌آنی با همسایه مدیران جز مدیران آرشده هیچ کس با همسایته خورده ها. <تصفيق> پس گفتیم ارتباطات یا رسمی یا غیر رسمی ornament. رسمیش یعنی چی یعنی شیپنی از تو ساختار مثلا سازمان انجام میشه بله یعنی که ارتباطات کاملا سرسل مراتبیه ساختار رسمی داره وقتی غیر رسمی مثلا ممکنه که من با مدیر عامل شرکت مثلا دوست باشم مثلا واش برم بیرون بله ده یعنی اینکه به حسب به نیازهای اجتماعی که وجود داره چیکار میکنه و تمایلات و علایق و انتظارات شما خیلی وقتا گفتیم که دوستان انگیزه ای که ما برای دوستی و رفاقت و مجموعه داریم یا نیاز مجمعمونن یا نیازهای مادیمونن یا نیازهای اجتماعیمونن بستگی داره که تو اون جمعی که قرار میچی نیازهایی داشته باشیم خیلی وقتا ما سرخ داده میشیم به روابط رسمی روابط رسمی جوابگوی پاسخگوی خیلی نیاز نیست تو سازمان رابطه قید رسمی یجاد کن. مثلا ما یک داریم دویدنیم، این فاصله گردون خیلی زمان برایه کمی. من رابطه غیر رسمی استفاده میکنم با توجه به ارتباط که دارم و دوستان جو قسمت خدمات سه سود کنم و دارم سه صد کارمو انجام میدم بدون که بیان تو روال رسمی. اگریز چه بوده؟ هم‌دلم اشرفی جان این کار برای من انجام بده اینو سه ببر در واقع ساختمون دیگه غیر رسمیه به صورت رسمی باید بره تو کارتاق قرار بگیر ها این نیازها بس به نیازهای ما تو مجموعه داره دیگه درسته دیگه چی گفتیم در مورد ارتباطات یک زنجیری و چرخی و همه جانبه صحبت کردیم زنجیریش چی بود گفتیم چیه زنجیری گفتیم که اینجا در سلسله مراتبیه یعنی اونجوری میاد درسته؟ ام. یعنی اینکه زنجیره فرماندهی وجود داره از اینجا چیکار کنه ارتباطات به سطح پایین برقرار میشه گفتیم به صورت که اینجا دوستان صحت پیام و درستیش مطرحه که شو سلسله مراتب کتبی خیلی مشخص شفاف داده میشه وقتی که چرخی هستش در واقع به چه صورتیه؟ اینجا مرکزیت داره. یعنی چی؟ اینجا سرعتش بیشتره. درسته؟ لنپادر حالت به مختلف هم داشته باشه. وقتی که همه جانب بس، یعنی تیمیه در واقع؟ رفت و برگشت بله، رفت و برگشت و همه جانب و م? چوبه چیکار کنه این ارتباس بغراشه در اینجا بیشتر رضایت وجود داره مثل سطح افقی می‌مونه وقتی که ما با همدیگه به صورت فلت ساختارمون هست رئیس و مروسی وجود نداره بیشتر چون حالت تیمی هم کار می‌کنیم. ها من یه دفعه شیبانی سر تیمه من در واقع اعضای جزء تیمم یه بار آقای کاشانی جز سر تیم من باز می‌بونه. یه یعنی من سرتی من بقیه دوستان جزه اعضای تیم هستن. اینجا در واقع رضایت شغلی وجود داره. ولی در این حالاست حتی درستی پیام خیلی مشقت چون شفافه. من دستور میدم. به فلانی که این کارو اون فلانی هم به کارشناسش دستور میده گزارش از شفاف کتبی مشخصه. در اینجا سرعتش بیشتره. ها؟ یعنی اینکه من تو مرکزیت قرار دارم از بالا از هم از پایین گزارشات به من میرسه. مرکزی با... من در واقع اون گزارشات رو بررسی میکنم صحتشم هم هست ولی سرعتش بیشتره متوجه این چی بخواه میگم یعنی در واقع از کانال مختلف من میتونم دستور بدم و چکار کنم در واقع خروجی ها رو بگیرم این قسمت ما جزء تیم هستیم که این رفت و آمده همه جانباست تیم ما با تیم بازرگانی تیم بازرگانی با مالی تیم مالی با تیم بازاریابی و فرشتره هم کنم میتونه اطلاعات رد و بدر شد شیر همینطور اینجا موقع سرعت کمتره ولی رضایت بیشتر چون من یک درگی از شما اجازه بخوام دیگه چی گفتیم توی ارتباطات؟ چیزای دیگه هم برداشت. بله کارش می‌کنه. این روابط غیر رسمی رو من بله؟ مدیر احسان چجوری بتونه کنترل کنه؟ غیر رسمی رو رسم. ببینید. اولا که بهتر اعتدال داشته باشه تو محیط سازمان. به خاطر که بعد خیلی زیاد بشه قابل کنترل اتفاقاً نیست. و موندی؟ چجوری ازش کنی که ببینید بیشتر با فرهنگ سازی و گفتبان کردن ببینید اصولا توی شبکه‌های غیر رسمی یه و تعارضاتی به وجود میاد شما از اونها میتونید استفاده بکنید و همونا رو به عنوان های منفیش به افراد گوشزد کنید و بگید برای خودتون مرز داشته باشید چارچوب داشته باشید بیاد یه دونه جلسه بذارید بر مجمع خودتون بر مجمع خودتون جلسه از که چه حسنایی داره و چه معایبی داره؟ حسناش چیه؟ معایبش چیه؟ جلسی چون جلسه در موردش صحبت کن. از دوستان بخوان نظر بخوان وقتی دوستان معایب و مزایاش رو بدونن، حدو میشناسن. ولی خیلی قابل کنترل نیست. فقط میتونه با فرهنگ سازی، چون خیلی به شما اهمیت نداره من با آقای کاشانی رو صحبت می‌کنم، کمکش با تو وقت اداری خارج زیاده، مونده به من نشره میمونی که هم آره، استفاداری عمر نمیکنه. میرم ساعت رو بزرم با آقای کاشون کمکش باید شما نمیتونه خیلی به من نمیتونه بگید چه موندی کمک رو بگو دوستان بزرم اصلا کارمون الان من آوردم خونه ها این هفته خیلی دو هفته شلوگی دارم کارمون آوردم خونه روسته کسی دید. به من نمیگه کارتو ببر کنه یا نه برکه امکان کارم میرم خونه از تلفن رو خونم زنگ میزنم با اون تیمی که میخوام کار کنم چون باید یه پول پردازی بدم برای مناقصه های دیدگاههای رو بگم و سورس هم باز بکنم بعضی اصلا هم. همه کارش با من نخواهد یعنی ما نمیتونیم قدرت اجراییش رو قدر نداریم پس بنابر این اون تایمی رو که من دارم با تیمم کار میکنم غیر رسمیه نه تو تایم اداریه نه تو تایم روز تعطیلشونه ساعت غیر و با این پاساری بگید ولی یه معایبی داره یه مزایایی داره اون بیشتر فرهنگ سازی کنید و عنوان کردنش حسناشو بگید ای باشم بگید و همیشه یادتون باشه توی کلماتتون تو بحثاتون با نیروهاشون و خانوادهتون از اعتدال دوستان خیلی صحبت کنید چون ما خیلی وقتا مشکلاتمون مال این زیاده روی هاونه ما یو خیلی یو خوشحال می‌شیم خیلی ناراحت خیلی نرم نیستیم. توی تیفی قرار بهتون گفتم، حتی هی... به شما نباز خواهیمون کلاس دوشنبه شمبه ما. بگیمید حالتاتون به سمت عرفان. نه کسی خیلی بهتون شما خیلی خوشحالید. نه به خیلی نارخدید. خیلی درد دارید. خیلی عزاد دارید. تو خیلی مشروفید. نرم باشید. همیشه این شکل نرمی داشته باشید. من وقتی مامانم از دست دادم هیچ کس نگفتم. تا هفت روز که گذشت و مجبور شدم دیگه. حتی مرخصی موقعه کاری برای بشونم. میخوادی که دلم نمی‌خواست از اون حالت نرم، چون نرم نبودم. کسی من در شرایط ببینه. هم؟ همیشه سعی بکنید اون رفتار نرمه. اون صباته که بهتون گفتم توی اعتماده. ثباتی تو احساسات و عواجتی توتون یه صباتی داشته باشید شخصه، حتی تو زندگی شخصتون آدم ها حساب میکنن میتونم بهتون اعتماعات کنن میگم ببین این آدم یه منطقی سرش میشه چرا؟ چون نه یه دفعه خیلی خوشحال میشه و زده میشه احساساتی میشه نه منطقی داره عزاش به جای خودش خوشش به جای خودش و هر کدومش هم یه اعتدالی داره. اون منطقی باشه خودش خاص. دیگه چی گفتم که مرتبا تا؟ بله ایشا یه موردی برام پیش بله خواهش می‌کنم. بله خواهش می‌کنم. بکنم چون برای خودم یه سوال بله بفرمایید. ان شاء بتون کاملا با چرکی دیشت هم اصلا نوع شب بود مدیرعامل یکی از شرکت هایی که با ما کار میکنه همراده‌ی خودم شرکت همراده‌ی خودم اه. زن زد و من که من مشکلی توی واردات یک کالا دارم می‌تونم از کارت بازرگانی شرکت شما استفاده بکنم گفتم بله حتما چون هر دو زیر مجمعه یک گروه بزرگیم بله و برایش فرستادم اونم تشکر کرد حدو گفتش که با مقامات عرشدم مثلا عرشد در حد ما و وزیر صحبت کردم میشونم تایید کرده که این کار رو سانیه اتمن انجام بدید درسته بعد از من تشکر کرد منم زیر یه وایبر برای که با کمال میل هر کاری دیگم بود این انجام میگیم درسته بعد توی این فکر بودم که خب اون درسته الان یک مدیر عامل همسط خودمه ولی قبلا زیر دست من بوده که الان تو اون شرکت مدیر عامل شده آفرین یعنی ارتقا پیدا کرده امیدوارم هست به شایستگیش بشه زیاد اصلا تخصصش و شایستگیش به شایستگیش به اینجاش رسونده آفرین داشتم فکر می‌کردم که خب این کلمه‌ای که من جمله ای که براش زدم که با کمال میل هر کاری دیگه هم باشه انجام میدیم آیا برای من که یه زمان اون پایین تر بوده یه زمان آیا این ال رفتار سازمانی ارتباط برون تو سازمان این جمله مناسبی هست یا نیست ببین که یه موقع هستش که تو من توی یه رفتار غیر رسمی از شما خواهش میکنم گفتمان شما میتونه صمان تر باشه مثل همین جمله الیه یه موقعی نامه کتبیه شما میزنم یه درخواست کتبیه شما دارم که آیا شما در هموقع اجازه میدید که من از اون کارتشون استفاده دادم شما به جواب اینشون موقع با از کلمات فوق در واقع کاملا رسمی استفاده میکنی ها به این چیز که من برایشون جواب دادم این جمله که بکن؟ نویستم که اصلا اینجور چون اینکه من دادم در اینجا نگارشتون رو... یادتون باشه حتما سلسل مراتب رو باید چه کار بکنی؟ رعایت بکنیم توی عبامل رسمی هم هم بعد از کلمات کاملا رسمی استفاده کنیم با سلام و احترام پیروب نامه، پیروب مزاره، به استثار میرسانده کب اون مکادبات آره، حالا توی گفتمانمون بفرمایید چی باید آخر کار زدم که خواهش میکنم کاری, کاری بود اطلاع دهید با کمال میل انجام میدهم خب چون تلفون زد چل... نه نه بیشه خوشکر شما در باره ما, ما, ما محترمان باید این جورده ای که من زدم در شخصیت واقعی خودم بود بله خیلی سمیمانه دوستانه این کار کردم می خواستم این از لحاظه یک ارتباط بین سازمانی؟ این, این،, این،, این کاملا از سمیمان ها محترم و هیچ مشکلی توش ندارد. فقط اگر می خیلی رسمشو بکنید در اموقع بیان من دو گفتید چنان مثلا مثلا در اقداماتی که در جامعه میدهد نیاز به همراهی و همکاری یا مساعدت تیمی مثلا مجموع شرکت افنان وجود دارد مثلا ایشون سرسر مرکبه بخواد چم رعایت کرده بوده؟ چون با مقام عرشدت بود کلمات رسمی من اونم... این هم محترم هم نه ایش کنش کرده نه تو اعتماد سازمانی اینجور جور ها نه ایچش فقط میگم که وقتی کتبی میشه موقع خو من و کلمات خالص راست رو به خودمون میگم اگر من نم. ولی بهترین کار همیشه به جوانهران توصیه میکنیم را که همیشه مؤدبانه صحبت کنید چون عادت تو میشه از کلمات آمیانه کمتر استفاده بکنیم چون عادتتون میشه بعضی دیدیم که دید. حلباب بین خودمون یه حرفی زدم ولی اینجوری نیست عادتتون میشه پس بنابراین اگر ما برای خودمون یک چشم رو داریم که یه فرد موفق در اجتماع باشیم دیگه اجتماعی بیزینس من هیرفویی باشیم یک مدیر تمام‌و‌من باشیم یک رهبر بخش باشیم حتما از همین الان با خانواده هم باید از کلمات مناسب استفاده بکنم. کلمات... بستگی به اون شخص هم داره دیگه شخصیت اون فردی که داریم باهاش صحبت بکنم. نه خب ببینیم اون مثلا بمون خیلی وقت می‌تونه کافه بازاری صحبت کنیم لازم بود صحبت میکنم تو جبه مشخصی بعد اگه مدام کف بازاری صحبت کنی خب دار یکی تو جا باید چی به من گفت آه؟ درسته؟ خیلی وقتا شما چرا میگم؟ شما همیشه از کلمات نیست هیچ مشکلی نداری با دوستتون با همسرتون با فرزند چه مشکلی بجوده؟ میتونی شوخی کنید محترمون میتونی سمیمی باشید محترمونی ولی وقتی بهتون گفتم گفت از اون تعریف نکردم من تو کوچیکی رفته بودم است یعنی چند بار، ولی خیلی خ خاطره دقیقه کم رنگی داشتم. بود. می داشتم. سال ها بودم تو رففتیم چهار سال بود میخوااستم بهم رویید نمیشون هرچی برنامه ریزم کردم چقول بفر کدا فاستو امسال توی دوواقع همین اووال تابس رو سعادت به دست بود که برم یه سفری در شد و توی قسمت همون صففاه ای هم مرکز بودم که یه جورایی مرکز دربال شهری است. خب یه ذهنیاتی داشتم یه خان یعنی خانواده مادری شنرونی هستن ولی اصالتاً از آب و اجدادیشون له نواب یزد که سکه زدن کرده یه ذهنیاتی داشتم یه خب پیش‌تمنه‌ای داشتم بعد که رفتم اونجا اول که دیدم که اولا مرووم اصیلی از یزد خیلی کم وجود داره تو مجموعه خیلی آه حرف میزنن ا تو که میشستم هر از گاهی سوال میکردم چون با ماشین شخصی نرفته بودم با هواپیما رفته بودم چیز می‌کردم سوال می‌کردم که چریدارو خونا دیر باز می‌کنن چون اینکه مردم چقدر تو رفاهنم <تصفح> گفتم یه روز از یه نووایی رد شدیم آقای شیبانی هستی پول دیلنگیز دیدین دیگه یه موقعی همسنگیز میشه خلاصه، از اون بعد برم نومی دیدم که پسر جوونی جوان‌تر از آقای شیبانی اونجا بود که با دوستاش داشتن اون نوبایی رو میچرخوندن سرون سال بخیلی جوا، مثل سمیران، مثل بعد من واسد دارم، بعد دیدم خب یه رو دو، بعد نوبت من بعد دیدم یه آقای دیگر رو، من برون خودم نمید در سرون بودم برشت یه نوبت منه گفت نه، سه تا زن سه تا مرد یه زن بعد نه بایی لحن ها بسنم مرد سالانی طور نه، نه، مرد ساله پر بوده، مرد مثلا مثل تو دیواری با دیوار و درخت مجموعه فرم واقعا شاید تو کم بیش به من یه دفعه فشار خونم مثلا بیا ولی موتمری اگه اگر اون موقع شما فشار مندیجو من فشارم همشه هشتی بود دره کمه حتما فشارم دوستی رفته بود موتمر اینم از در بود اصلا خیلی باید بیشه بعض ستا رو که دادم و بعد بشه خودم فقط این یه بود و این اولین نونی بود که اونجا گرفتم که حالا لخرین و حوث دلنگیز خودم رو مثلا در خانواده بخوابه ولی واقعیتش اینه که دیدم که هرچه فضای متفاوتی حالا ایناشو به یک زلیم بشه رفتم بارو یه میخواستم نقروب یه بخیرم رفتم با آقا صحبت که تنها مرد بود اونجا بوی اتقلان میداد شب باور نکنین حتی تو هتل صفایی همه کجا می پرله اون در لی که دیدم اونجا نمیشه براتون تعریف کنم یعنی رزروشش حرکتی دیدم که اصلا دیوونه داشتم یعنی فقط دلم میخواست از اونجا کنم اصلا نمیدونم چرا اون دی واقعا همش بکنم چرا تحمل کردم باید همون روز دوم برمیگشتم. توی مسئلهایی که می ریم جالب تاریی رو بگیریم یه ماشینیشیه آقا باسانم فکر میکردم شاید ۲۸ سال سالی من جلو هم نشسته بودم خانه بودم پچش نشسته بودم باشه من صحبت جان؟ نه حالا میگه جان نمیشه دیگه حالا <اقضا> من جلو میشه دیگه سن اما مثلا آقا بشینه ده... دوتا آقا بشینه خانم نمیشینه تو من آره من مختلف مدر. دیدم که یکیشون مثلا اصفهانی بود یکیشون کرمانی بود که کرمانی خیلی با کلاس بود زندم دیدم هفت نه اصلا اینا بعدو شما بر نظر نمیاد که مثلا یع از قیافه رو با با کرمانی و او چه جالب و هم حرف زدیم آدم خیلی محترمیام بود و با اونم باید داشتم صحبت میکردم همه داستانوان برای تون گفتم که اینو بگم گفتم که آبا اینجوری بعد اشوی شروع که حرف زدم بعد یه حرف خیلی زشت اصلا نمیتونم بهتون بگم. یعنی مردا به این خسونی حرفواران این کلمه رو کار نمیبرن شیع بایی اشو من یه دفعه اینجوری شدم یعنی میدین اینقدر جا یه تکون خودم نگاه کردم بعد دیدم نه ادابه داد انقدر براش عادی بود. ما من منظوره لی این شما، حالا غیر از اینکه شما وقتی با یه خانم صحبت می‌کنید و پرانسیب داشته باشید یعنی رفتار با یه خانم ولنگ باشه بعضی کلمات رو شما نباید به یه خانم بگی این یه ای پرستیژ اجتماعی اگه برای خودت چیزی تعریف کنی ایرونی‌ها یکم همین همه چیزشون بعد از انقلاب متأسفانه قرماتی شده ارزش‌های اخلاقیشون صرف شده شما شاید با یه آقا خیلی راحتتر صحبت کنید و از یه کلمات مردانه استفاده کنید تو جمع که خانمی هیچ نداشته باشه وقتی یه خانم هست اصلا از اون کاره ولی میخوام که من یه کلمه خیلی سش بود اصلا کلمه مردونه نبود بعد کولسمان اون والله اونانه که اونا تو خوشت باشه شو بود اصلا پیاده شدیم همینجوری گیجو من گفتم فهمیدیم فهمیدین چیکو بداریم بریم ما دیدیم ما تو چت کنه قولی اینا دار حواسش برای. نفهمید. نفهمیدون گفتیم اگر حواسش یه ذره به تو بود میدید تو قشنگ چران تکانی قرد نگاه کنی بعد میفهمید یه چیز مزخرفی گفته ظاهرم که عادت کرده این این این قاعده من میخوام همینا بگم حالا بعد شما کشور تحصیل کرده هستید این حرفا نمیذنه ولی حتی کلامش عامیانه به کار نبرین مثلا خیلی از بچه‌ها میگن که ما با این که ارتباطات صمیمانه داریم اسرا به اسم کوچیک خانمی ادعا می کنم من میگم هیچ اشقی اگه فرهنگ سازمان چون به اجازه میده ولی کیو مشتری اومد من, من گیر میکنم. یا آه آه آه می کنم میگم آقا نمین خان ببین این داره همین کارام هم کردم یه دفعه همینطور شد مثلا از مشتری اومد مادام ا تیممم عرضم گفتم خانم آقا گیر کردم هفه کردم چون بهش گفتم پوپک اصلا فامیلی هفه کردم مثلا من یه خوش شده بودم دهنم همونجوری گفتم خانم پوپک پوپکیان پوپک یعنی نمی‌تونی یعنی از اونجوری من خودم بودم چون یه لحظه بود اصلا به ذهن نمیدید که فامیلش چیه هر چی فکر کردم خوام خب اینو بگم خیلی وقتا چون عادت مون الان دوستایی سمیمه اگه یا بینگیر بدیم واقعا فامیلیاشون گدم نمیاد چون مطلقا با فامیلیشون کاری ندارم ولی بهشتون توصیح میکنم اگر اون ارتباط سمیمانم هست تا جایی که میتونین اسم کوچک ساده برای چون در یه شرایط اگه قرار گرم مگر خیلی او اوکی باشید دیگه ولی واقعا توی محیط کارم تا حالا پیش نمیده در این و شارس ولی یه بار اینستورتی رو دادم هرچی فکرنام فاملی اون طرف یادم در این مجرد که بعد دارد دا یه دا دا دا دا دا دا مدس دیگه هم هم فهم میدهم پوپرک خیلی بلی، خیلی بلی یه بقیه این گفتم خب دو سال بریم سراغ مبحث اه اه من فقط یه چیز خدمتون بگم توی ارتباطات چون ما ارتباطات سازمانی رو در مورد صحبت کردیم و گفتیم سازمان هم میتونه ارتباطاتش رو آقای کاشانی بیاد صندوقی قرار بده خطوط ویجری بذاره خط تلفنی بذاره ایمیلی بذاره شیبانی جان برای اینکه افراد بتونن بدون اینکه نامونشانی ام از خودشون به جا بذارن مسائلشون رو مطرح کنم اگرم نه میخوام حل بشه به صورت فردی تو مجموعه سازما چیکار بکنم. چرا نشه نه میکنه الان نه دیگه به صورت خطوط یا ویژه بزنم یا به صورت چی گفتم صندوق انتقادات بشه سندوق انتقادات بزنم یا اینکه جلساتی رو بزنم مسائلمون مطرح کنیم که در واقع مسائلمون چی بشه حل بشه درست می خوام شکل که بله معرف باشو بچه نمیان؟ اینجا من میبینم، چرا شما نمیدید؟ چه که یا حالا شده؟ من، الان نمازم آها، باچه ببینید، ما با که توی سازوان جوریه یه ما یه خوتیت ویژه داریم یا نشست های سال نداریم یا یک سینی رو داریم که دافت طلب هستم ها داوطلب هستند میان جلسات رو میذارن، خروجها رو میگیرن، گزارشات رو میدن و پاسخها رو به کارکنان میدن یا به صورت در گروه های خود باکس های واحد وازالبانی، در واقع، واحد مالی، واحد بازالالفروش، فروش، توصیه اف، تولید، همه مدیران میانی، دوره هم جمع مسائلش رو مطرح میکنن، تعارضات بین خودشون و گروه ها از بین میبرن، یا اینکه در واقع چه کار شوراهای مخصوص میزاریم، هم کارکنان هم مدیران، مثلا، ما دور هم جمع میشن و این باعث میشه کارخونه به راحتی مدیرشونو ببینن و مسائلشونو بازگو کنم. این شیوه های رسمیه. ولی دوستان، یه نکته ای رو که نمیدونم یادداشت کردین یا نه، به صورت فردی که مهمم هست که البته تو رفتار سازمانی مطرح نمیشه، ولی اینو فقط برای محض احتیاط میگم که گفتم مهارت هایی که شما باید در خودتون توسعه بدین، مهارت های شنودی، کلامی و چی؟ اون دفعه گفتی من نوشتم با خور شما باشید اصب چی بود؟ باز خور, خور. خور. آها این ست رو فراموش نکنیم لطفا ما برای که محارت های شنودی خودمون رو توسعه بدیم باید شنود فعال باشیم چش تو چشم, چشم. هم؟ کامله حضور قلب چش ذهن اینجا باشه معنی نگاه بکنید حرفای منو من خوش کنه حواستون جای دیگه این وسط صحبت من نغرید مثل صحبت من تماشا بعد تفکر کنید چون اگر وقتی من دارم صحبت می‌کنم شما دارید به موضوع منفک می‌خوره که یه سوالی بپرسید یه همچین اصو باطی منو از دست دادی درسته برای هم خیلی وقتی میری پا پاورپوینت رو می‌خونیم میگه این قسمت رو نفهمیدم چی گفت اصلاً یادم نمیاد که شعبونی حرف زده باشه بخاطر که حواس دیگه, دیگه دیگه بوده من صحبت کردم من در موردش توضیح دادم ولی شما یه جای دیگه بودی یعنی شونودت درست نبوده کسایی که کلامی و یا چی کلامی شد قبل از اینکه بخوام بحث رو بگم کنم فکر بکنن مبحثشون رو مرور کنن اجازه میدن طرف مقابل بازخور بهشو بده یعنی وقتی گفتیم من میگمپیما رو درست گرفتین. یه بار دیگه درش رو از اووض ها با هم مرور میکنیم. یه بار دیگه ببینم شما آنچه که من گفته بودم رو به درستی دریافت کردید و بعد بازخور دادن اون برای چیه برای اینکه هم ببینین پروامما درست کردیم که من کم در مورد عملی کرده شما بازخور بدم. توی بازخور یادتون یه هیچ یادداشت کنید. سرعت عمل شما مهمه کجا، کی و با چه سرعتی آقای آقایی اگر نیروی امروز رفتار نامناسب داره، وقتش کیه؟ ماه دیگه بهش بگم، نه باید تو همه هفته موضوع باش مطرح کنم موقعیتش مناسب، جمع بگم، نه بهتره که نقدی میخوایم من بکنی در یه اتاق بسته، بینیم خودمون دوتا به من بگی، شأن انسانی منو درو حفظ کنی. پس تو بازخورد دادنم شما یادتون باشه، باید به طرف بازخورد بدید با دلیل و مدرک. م? بعد اجازه بدید خودش دفاع کنه. چون وقتی یه موقع بازخورد رو عمل کردش میدید، رفتارش میدید، میگه نه توی تفاهم شد. من اینجوری، من اونجوری، یا من رو دارم. من در از موضوع داشتم که این رفتار رو کردم. بهش اجازه بدی صحبت بکنه. پس بنابراین، این این سه تا مهارت دوستان جزء مهم‌ترین مهارت‌های ارتباطیه که من وقتی خودمم درس می‌دم حتماً در واقع این مهارت‌ها رو چک کار می‌کنم در موردشون مفصل صحبت رو کنم ما وقتش رو نداریم ولی من دوست داشتم چون بالاخره یه شات‌لیداری رو بعد دستتون بدم دوستان پرسش‌نامه مهارت‌های ارتباطی باز هم تو با خودتون اینو پر بکنیم. که شما میگه که چقدر این ستا در سطح مناسبی هست. اینو خودتون انجام بدید. فایلش هم براتون فرستیدم. ولی چون پرینت براتون گرفته بودن، الا چش. براتون کلی که من گفتم خدمتتون داده باشم. بیشتر فردیه. ولی فردی که ببینید، چرا ارتباطات رو با ارتباط مقایسه کنیم. باید این سه ارتباط رو توی مذاکرهمون تو داشته باشید. تو رفترمون، با مدیرمون، با زیر دستمون، با همکارمون، با مشتریمون، با رقیبمون پس جز مهمترین مهارت‌ها، ها، چون مهارت‌ها ها زیاد داریم توی ارتباطات ها، سازی، نفوز و این محارتی دیگه الان فقط نزنیم بچه ها، این باشه برای درموی خودتون که تو منزه دسته، بفهمنون اصلا اصلا قبلا که تا <تصفيق> بله. می خوامن اصلا بله. می میسته که مثلا برای من با بله ما مثلا می خوام بریم که باختم بله اینکه همیشه میگن که خود طرفو مثلا نگو تو آدم بدی هستی شد. بله بله عمل کننده شو دیگه تکرار کلام عمل کرده فرد بله. بله. رو نقد میکنین آره. بله همین مثلا نمیشه بد مثلا خاطر طرف نمیتونی بگی مثلا تو آدم بدی هست ببینید اصلا بعدو خود گفتم به شما وجود نداره بچه‌ها ببینید خوب و بعد اولا تعریف من شماست خوب و هم تیفه گاهی من به این سم میرم از نظر شما گاهی به این ولی این نظر شماست نظر شما با شیوانی فهم میکنه با آقای ابرومین میکنه با آقای سلطانیان فهم میکنه با نرجا متفاوته این تیفه و خوب و بعد من شما تعریف میکنیم ببینید همین الان شما اساتید مختلفی دارید وقتی میخواید در مورد شعبانی نگرشتون رو بیان کنید، حتما در واقع یه قیاس های امکان اتفاق بیفته درسته ولی نمیتونید بگی صرف این خوبه یا بله میگه آره مثلا مهارت کلامش خیلی خوب بود موضاتی کلیدی که به ما گفت خیلی خوب بود ولی احساس کردم نرسه تمام مطال رو بگه زمان کم ووردیم ها توی این تیف. درسته منفیتر چکار؟ ب... بازخور دادن دادن شیوهش اینه که سمیلا جون شما به هیچ انسان نگی، تو آدم مزخرفی هستی، تو بلد نیستی تو نمیتونی، تو نه میگیم فکر میکنم شبانی اگر تو مراقب در واقع زبان بدنت باشی چون اونجا تو جلسه علام اشارهی که اومده یا خنده های جایی که کردی باعث سوی تفاهم شد این رفتارت خیلی بری بود این رفتار باعث روی مشتری ناراحت میشه چیکار میکنیم؟ میکنی رو رفتار دست میذاریم هم؟ چون همونی که با همدیگه دیگه یادت باشه صحبت کردیم در مورد شخصیت تا تو نخواد، شعبایی نخواد توشو نمیتون اصلاح کنه اگه درگوه، نمیتونی بهش بگی دروغ نگو فقط میگه که ببین سازمان ما عرضش هاش صداقت و پاکیه راستیه میریم رو اینجا. نمیگیم تو آدم دروگوی هستیم. مستقی من چی کارم ب فیدبک بعد اون میاد از خوش دفاع کنیم. میگه شما چه عمل کردیم غیره راستی همونیم. که این با مشتری کردی این محصول ما این کیفیت نداره. درجه A نیست. یه ها یا اینجا این قولی که دادی در مورد تایید وزارت علومه نیست برای چی در مورد این ما در اینجوری صحبت کردی ارزش های کار ماست تو داری قولی به مشتری که خیلی واقعیه حرفی رو داریم میزنیم که رو برند سازمان اثر می‌ذاره چیکار کنیم کرده فرد رفتار فرق مورد نقد قرار میدیم چون واقعیتش اینه که دوستان قرار شد که ما در مورد آقای نبی که عزیزم در مورد آدم قضاوت نکونیم پیش پیش‌داوری نکنیم همه انسان ها رو چیکار کنیم دوست داشته باشیم ب اگر این کار بکنیمه که میتونیم با هم زندگی تیمی کار بکنیم بریم دوستان بود مقاث جدیدمون چون وقت اندکی هم داریم و معدللا که پا پینچ همه رو براتون ارائه بدم و دفعه پیش نشد فقط سام اون شخصیت صد تاایی رو مال نه ن صد تاایی داره غیر از اونم چیزهای کچکترش هم داره ولی اون تست شخصیتی که بهت گفتم صد تا یه تو اسس منسل خیلی وقتا استفاده میشه که خیلی جامع، هست مال نیو بود تو نیو اصلا کلا یعنی چی؟ اسم, اسم... باید اسم... باید نه،, نه نه نه نه مال طرفه مثل... مثل مثلا من گفتم تست شخصیت مارز اه، فریقز بله اسمشون اسم فرده اسم خودمون فرده اسم آره اسم خودشه نیو اسم خودمون آقاست خب دوستان بحث تعارض خیلی نگاه اتقاد داره که تعارز اصلا یعنی چی؟ میگه آقا جان تعارض چیزی که شما باید بهش اعتقاد داشته بشید بهش باور داشته باشید. تعارض یعنی که من شما در یک تضادی با هم هستم یک کمبودی وجود داره یک صدی وجود داره میگه آقای عله شعبانی به دلیل منافعش میخواد که صد راه آقای کاشانی بشه موضوعشون ایشون چه که کنه رد بشه درسته؟ پس بنابراین دوچار یک تضادی با آقای کاشانی هست پس یک فردی بخاطر منافعش در واقع داره چکار میکنه؟ برای اون یک مخالفتی رو ایجاد میکنه یک تضادی با اون فرد داره یک بحثی رو ایجاد میکنه که در واقع نظریه اون یا نگاه اون یا نگرش اون چکار کنه رد بشه پس هر کدوم دنباله و اون فرد یا عقب میکشه و من دنبال منافع خودم هستم یا چکار میکنه, اون میکنه. <تصفيق> که در نظر یه من کنه یعنی در یک تعامل این اتفاق میفته این تعارضه میتونه سازنده باشه یا مخرب باشه تئوریایی که در موردش وجود داره همینو میخواد بگه اولین تئوری که مطرح شد در مورد تعارض گفتن آقا جان تعارض اصلا وجود نداره اصلا چیز خوبی نیست اصلا چیز خوبی نیست من شما با هم دوام میشه من و شما باهم مخالفت بودنی؟ اصلا چیز خوبی نیست یه تعاروی کفت داشتن اصلا تعاروز نباید وجود داشته باشه تعاروز با با یه بحثش این که اگر به وجود اومد پین من و شما که گروه هستیم بین من و شما چون من که همچه خود بخود که بخودم زدیت ندارم یکی دیگه میاد که ما میشیم گروه درست دو نفر کشم امکان داره توی این تعامله توی رد کردن بحث شما یا شما رد کردن بحث من یه چیزایی به هم بیاوزیم یا من موجب شم یا شما یا دوتا تامون اصلا به یه راه حل سومی برسیم به یه نظر پس میتونه بحث مثبت هم داشته باشه نظریه سومی میگه اساساً تضاد تو گروه مال گروهه، مال تینه. مال دوتا آدمیه آدمی که در زندگی مشترک میکنن میگه میشه منو شما عین هم فکر کنید ما به تعداد آنمایی که اینجا نشستیم، هر کدوم امون نگرشای مختلف و درک های مختلف ده. به تعداد تک تکمون تو زندگی مشترکمون هم همینطوره توی تیم واحدی سازمانمون هم همینطوره درسته یا نه؟ پس بنابراین تعارض وجود دارد دوستان همین هم, هم جام الان با هم نشستیم مواحظ علمی رو با هم ورور کردیم هر کدومون یه درکی از رفتار سازمانی داریم یه درکی از شخصیت داریم یه درکی از نگرش زا و مضمونمون داریم یه درکی از بحث‌های ارتباطات داریم درسته حالا می‌خوام که بیام بحث‌های خودمون رو علمی‌تر کنیم ساختار بهش بدیم قابل دفاع باشه چون وقتی من این سه تا نظریه شما به من یه تعارض وجود داره میگم ببین این رد شده مگه که بریم تئوری این تئوریسیا رو رد بکنیم و ثبتش بکنیم تعارض وجود داره و حتماًم سازنده است یا مخربه که من میگم که تعارضات همیشه سازنده است. بسته به نگاه شما داره. چقدر بتونن از اون مطلب استفاده کنید؟ درسته چی بیاموزی؟ و تو اون تعامله خیلی وقت مضمونش بری یه سرانمزد دنبال یه اطلاعات بیشتر، تا مطلب دیگه بخونید. چرتو تجربه دیگر رو میشینید. برای همین به نظر من همیشه تعارضات اگه خوب مدل‌دار باشه، نقش چی داره؟ سازنده, سازنده بریم رو بحث بعدی نگیت آقا جان تعارض این سه تا فراینده به من من با آب شما نگاه کنیم. کنیم که قبل أبلت... التوارث مخالف مخالف اول مرحله ايش یعنی میگی که آقا جان من بر حسب اون های شخصی، ساختار ارتباطات چه تو و چه تو،, تو فردی باشه، فردی نمیکنه. من شما با هم تو حال یا یه مجموعه با یه مجموعه دیگه در تضاد. چه بحث سازمانی رسمی باشه چه غیر رسمی. یک ت... به خاطر اون نگرش و ها، هایی که از موضوع داریم و نحوه ارتباط با قرار کردم و ساختار فکریمون و ساختار سازمانیمون. بس ببینید تو فرد میبینیم تو گروه داری میبینیم یا تو سازمان. این مخالفت وجود داره چرا؟ چون به تعداد تک تک ما نقطه نظرات متفاوت هست میگه کی بروز به این تعاروزه رو اگر من همرنگ جماعت بشم نویده هم چکا میکنم؟ تعاروزه رو بروز میدم در موردش حرف میزنم نقطه نظرات خودم رو میگم ولی بله خیلی وقتی این پنهانه. عدم رضایت شما که شما تو مجموعه حس حسیم کنی تأثیراتی وجود داره ولی تأثیرات هنوز بروز نکرده خودش رو داره به شکلی دیگه با کمکاری، با قایق بعد، با جابجایی زیاد، با بحر وری و کیفیت کار پایین خودش رو نشون میده پس تأثیرات بالاخره یا پنهانه یا آشکاره و بعد مرحله سومش رفتاری که ما تو حالت میکنیم آیا ما موضوع رو مطرح که کردیم میخوایم با همکاری به یه نتیجه مثبتی برسیم؟ میخوام که کل کار رو از بین ببریم میخوام به یه تشکیلات مصالح برسیم مثلا حل بکنم بسته که دارید که شما چه رفتاری تو اون بیان تعارضتون داشته باشید و هدفتون چی باشه هدفتون اینه که نظر خودتون رو تحمیل بکنی؟ یا ن... نه به یک نقطه نظر مشترک من آقای کاشانه با هم برسید بسته ببینید که رفتار شما دنبال چه هدفی داره دو در نهایت جا چی من دست پیدا کردم دست پیدا کردم و نتیجه کار این، اگر که من با شما موندم و به یه تعاملی رسیدیم، مطمئن نش میشه؟ عمل کرده اون افضایش پیدا میکنید، یکی رشدی سوش اتفاق ولی اگر من از گروه جدا شدم، عمل کرده میاد پایین دیگه، درسته؟ همه با هم موافق برمی کنید، همه هم, هم دارن مسئله امکان برای، احتماله، مسئله اشتباه با هم میره درست؟ مثل اون خطایی که گفتم تحقیقات اینا نشون داده بود. أشام یه آدمه، یه فردیه که کارتو انجام بده. اینم که سه تا خط دیگه که, که میگه همه کودا طرف. چون همه میگفتن اینا در واقع هم یه, اندازه یه اندازه هستن. اون نفر آخری هم که وارد مجلس شد، هی نگاه می‌کرد ولی هم رنگ جماعت اگه بخواد بشه بله، شو فکر کردش خودش درشه بود. همه دارن چیکار می‌کنن؟ یه اندازه است. درسته؟ ولی اگر بگید نه، این نیست، بعد چیکار کنم از اون جمع بیاد بیرون؟ چرا اونجا نمیشتید رسیدن به تهاروز؟ تو مرحبه رفتان چی؟ تو مرحبه رفتان نمیشتید دستی ها زیدن دست ایده کردن رسیدن شما هر کلمه کستایی دسته کارده بکنید استاد شما گفتین که توی شما. یه سیستم مثلا یه, شر... یه شرکتی ما نباید پیشتاوری کنیم راجع به اون افرادی که ماونجا بعد اگه پیشابوری نکنیم چجوری بعد آنالیزشون کنیم چجوری باید بفهمیم رفتارشون رو نه شما ببینید شما به بحث به یک تحلیل های درست از رفتارشون رو تحلیل میکنید بعد اگر میتونید از دیگران هم سوال میکنید خیلی وقتا از یه ارز... مثلا زیر رو هر ارزیابی کنی فقط نظر خودت بهش اتفاق نمیکنی یک ارزیابی 180 درجه ای انجام بدی 360 درجه ای انجام یعنی خودت ارزیابی میکنی که رئیس مستقیمی میدی بال دستت هم ارزیابیش کنه پایین دستش هم کار اگر داره با مشتری بیرون درس باتیم اینکه مشتری بیرون هم عرضا بیش درست، آخه، اون موقع به یه رفتهایی برسید ولی در خب نه، کیس بگو تا با هم صحبه مثلا من یه همکاری دارم که همکار همصد؟ همکار همصد دارم خوب... بعد، خب نسبت به این شیش و هفت ماهی که تو ماهیت کار بودم باهاش یه سری چیزها رو متوجه شدم مثلا این که اخلاقش چجوریه چه چیزایی دوست داره چه چیزایی دوست نداره خواب بعد اینا رو بهش نگفتم یعنی خواب. تو ذهن خودم ذهنیتم جوری بوده که طبق این ذهنیتی که ازش به وجود اومده در ذهن من باش رفتار میکنم خب. برداشته دیگه درکیه که ببین یه نگرشی در مورده این فرد داری و یه درکم از محیطی که توش هستیم و ما درسته. هم ببینم هم کار بکنیم پس برنابراین این خروجی رفتار در واقع با اون ایکس است درسته؟ خب حالا مشکل سر کجاست؟ مشکل این شما گفتیم شما که چما قضاوت, قضاوت کنیم قضاوت یعنی اینکه که بگی که ببین این آدم آدم بده این آدم آدم کسی این آدم قاتل، این آدم جانیه این آدم دوسته این آدم چیز غیر اخلاقی رفتار میکنه داری دادی بهش کاملا استناد می‌دی به یه تیپ شخصیتی که مسئله سازه شما میگی که من الان از شما می‌پرسم که این آقای یا خانم ایکس چه تیپ آدمی شما میگید که شناخت من در سطح یک همکاره از نظر اخلاقی به نظرم آدم نور می‌بینیم تا اینجای باش آشنا شدم و میدونم که بسیار خانواده دوست آدم هنرک دوستی خب اینا میشه قضاوتی بیاری که ما نه نه رفتار ما نسبت به اون شخص نه نه تحلیلش میکنی. خوب و بد مطرح نمی‌کنی درست ببین این قضاوت اون قضاوت یعنی چه خوب و بد مطرح نمیکنی آدم خوبیه یه خب اینکه نمیشه گفت که هر کسی خوب بالاخره مشکلاتی داره در حین اینکه خوبه نه این دیگه ما وقتی میگیم غذاوت یعنی میگیم که شما اینو نگو این آدم آدم بدیه این دوزده این کسیفه شما میتونی بگی که عمل کردش نکار آمده. درست عمل اثر بحشه عمل کردش رفتاره رفتارو داری در واقع بازم داری تحلیل میکنی با چیا؟ با ابزارهایی که داری با خروجیهایی که اون داره تو محیطه سازوان شما الان از من بپرسید که مثل میخوام بگم رئیس دفترت؟ میگم ببینید رئیس دفتر من فرد تواملدیه در مورد اخلاقیاتش قضاوته میمیکنم چون من واقعا نمیدونم. خیلی سال کار میکنم باشید چون خیلی وقتا می‌گم این شناخته توی روابط خیلی نزدیک‌تر ایجاد می‌شونده من تو اون جایی که دیدم از اشون یک عمل کرد مصبت دیدم و در سطح خوب، دختر توامن بینم هست. ولی اگه اومدم گفتم یه دختره روسی نونوری خیلی با تربیته ببین من درا هر چج قزاوت میکنم میدونی چی میخوام بگم حالا اومده با, با دوستش یه شوخیم میگام من ادم در اونجا رفتم گفتم اون بی تربیت اخه اصلا یه سری رفتار داره هست که میشه چش پوشی کرد ازشون نه خب اشکال نداره شما همین شخصیت اون شما شما ببین شما با تحلیل خودت رفتارت که با اون مدیریت میکنی لزومی نداره قزاوت کنی موزومی ندارم قضاوت بکنیم بعد یه چیزی به شما بگم شما توی این قضاوتی که ما میکنیم من منظورم اون که شما قضاوت نکنیم یعنیم آدمه رو تعمیمش ندی به دیگرانم نمیدونم چجور بهتون رو ببین معلن از آقای کاشنیم من خوششی نمیاد آه یعنی پشترش شجورای هم بزنیم نمیاد با نگرش خودشه با برداشته خودشه ولی به واقع شد من واقعا آدم بسیار مصبتی هم باشم ایشون برای خودش تصمیم تصمیمی میگیده در رابط بارفت داره من ذهن خودش ولی اینو تامین به شما نمیده میگه ببین فرلانی من دیدم که مدرس محترمیه میتونی باش تعمل کنی و ازت رو بپرسی ولی در مورد من قضاوت نمیکنه. من منظورم که در مورد همکاراتون دوست، قضاوت نمید به اینشون یه برچسب برند ندید خودتون. این خوبه این بده این آدم مزخرفه اون این این مدیر مدیر اثر بخش نیست آره می تونیم وجود ببینیم چون دیدم بوده عمل کرده حرف بزنه می تونیم بگیم اخلاق و رفتارش رو دوست ندارم من با همسرم به این مشکل مشکلی برمیخورم جدا میشم از من میون سو اون که خودی اونقدر گیر گیر دست بده من اصلا محترم نیست منشون تفاهم درست نشد بعد اون قانون رو خود باشه از کنه پس چجوری مثلا شما در مورد اون آدم میگی ببینید تو باید خودت خود باقی باقی با تحقیق کن تو باش اونش تعامل کن باهاش سفر زفر از پس خانوادت کمک بگید اگر بر من مناسب بود که من باشت زندگی میکردم پس مناسب من نمیده من دوزمان آدم بعد این این من نمیدنستم با تربیت خودمون خود اون که خیلی قابل تغییرم نیست یا به خاطر همون نگرش آه. چون وقتی هم فکری هستیم ما نمی‌تونیم زندگی کنیم من یه پارتنرهای خاصی باشیم مثلا پارتنر سکس باشه فقط بر اونقدر قصد پارتنر فقط مهمونی رفتن فقط باهاش مهمونی میری پس برنامه‌ریزی به مباحثی وقتی زندگی مشترک داریم همسرونه در جامعه ایرانی یعنی که همه چیزمون با بیرون رفتنمون مهمونی رفتنمون هر چیزی عشقمون محبتمون همه اینا. پس بنابر این چی کار می‌کنیم قضاوت نمی‌کنیم میگه منیشون تفاهم من منظورم اینه شما باید این فرصت رو بدهید خود اون فرد بره میتونه, میتونه از شما یه سوالی بپرس مثل همون سراحت که من دسته به زن داره اگه داره شما بگید بله نه ها؟ این صداقتتونه امکانم داره نخواهد صحبت کنید دیگه از من سوال نخواهد اگر نمیخواهد پاسخ چون لزومه نه پاسخ بدید من خیلی وقتا شده این اتفاق افتاده برای من در مورد برای خود من پیش اومد من به یه نتایجی رسیدم که قضاوته واقعا دیگه برای خودم یه قضاوت کردن بعدا از من که سوال میشه من همیشه اگه میدونم خودم شون اشراف دارم میدونم که خیلی نظر شخصیم توش در پیله فقط تحلیل تحریر نیستم قضاوت میکنم برای خودم میگه اصولا میگه پیشم من سوال نکنیم سراحت میگه در مورد شما مثلا اون که من نگه نخواهم یعنی احساس کنم که نظر شخصی می داره میره به سمت قضاوت میگم بهتره یعنی من سوال نکنم این کارو کردم چه شده کسایی سایرو که بالاخره مثلا مدیریت ارشمو از من در رو سوال کرده من واقعا نظرش یعنی نظر داشتم رو اون قدم یه چیزایی دیگه بیدر... ولی همش پیش خودم گفتم ببین من الان رو نمیتونم برای توضیح بدم چون بعد موقع چرا بعد من باید اون, رو, با با با اون رو بگم و امکان داره این بحث من شعبانیه اون نگرشش اون شخصیت اون درک است خب چون من با... میتونم از من از آدم های سوال نپرسم مرجع اودوی مرجع تری سوال بفرمایید من آدم مناسبی برای پاسخ به سوال شما نیستم میگم دنبال این نباشید تو چه که میتونیم دیگه ولی میتونید رفتار رو خود تو تحلیل میکنه میگه یه عمل کرده اش اونجوری اخلاقش با من خیلی معشنی اخلاقش رو داره میگی در خود شخصش صحبت نمیکنه خب دوستان یک تعاوزه زمانی به وجود نید با شما اکتماعات باقره میکنم و صحبت میکنم داریم ما هم مزافر با هم داریم تعاویل میکنم برازه درسته؟ پس مذاکره چی زباری ما بسیدونم؟ زمانی که من شما داریم سر یه موضوع مشخصی با همدیگه دنبال این هستیم که به یه نتیجه برسیم. حالا در واقع میخوایم که یک خدمت رو به هم ارائه کنیم یک کالای بین ما رد و بدرشه یک قراردادی بین ما بسته بشه به هر حال جفتمون ما یه منافعی توی این موضوع داریم که داریم با همدیگه صحبت میکنیم. یه چیزییت مورد علاقه میده داریم در مورد صحبت میکنیم مثلا مثل امروز که نشستیم اینجا یه موضوعاتی رو داریم که مورد علاقمون هست چون رفتار سازمانی یا مدیرت منابع بسان توی تمام هم سر کار میرییم و خیلی وقتا تو خونه زندگیمون بعضیش قابل اووردنیم چیکار میداری در مورد این موضوع مشک با هم دیگه چکار می کنیم مذاکره می میگه البته غ دوطور براتون همبد میگم. میگم که بحث دیگری هم دیگر کتابایی دیگه چجه نوشتم؟ رابی میگه آقا جان دو تا استراتژی بیشتر شما ندارید یا شما میخواید آقا جان جفتتون ببرید دنبال رابطه برد بردید که بهش میگن چی؟ بهش میگن مذاکره اصولی یا دنبال این مذاکره غیر اصولی من ببرم تو بگازی جفتمون بگازی تو ببری من بگازم یعنی ست تا حالت درش بودی هستن پس براورید اینه که ما همیشه تو مزاق دنبال رابطه چی باشیم؟ برد برد باشیم. ولی خیلی وقت آقای کاشانیشون ما تو زندگیمون، تو زندگی کاریمون را دنبال رابطه برد برد نیست. نیست. همین همینم هست که به اون اختلاف و تضادی میشه، میرسه که ما گروش چی میشیم؟ جدا میشیم. چه احساس می‌کنیم؟ ما داریم میبازیم. درسته؟ در اون حالتی که شما گروش جو، چه زمانی زندگی رو ترک می‌کنید که فکر خودت میبازید؟ این رابطه، رابطه برگ نیست. اون موقع است که تصمیم به جدایی میگیرید. چه سازمان، چه از گروه، چه از زندگی شخصی <تصفيق> میگه یک منابع وجود داره که توی برد و باخت دوست مبلغ ثابتی. درسته؟ توی حالتی که من شما میخوایم یک ماشین با هم معامله کنیم یه مذاکره یه دادید با هم ببریم امکان این رقمه جابجا جا بشه. شما بگی 100 ملیون من ببین بیایی کم پایی شما بگیم خب 90% هم نه یه دره نه حرفتو حرفه من مثلا نمیدونم 93% ها با هم, با هم, با هم سر یعنی مبلغ منابعه چی میشه متقیر میشه از یه وسیلی میخوایم استفاده کنیم به همین شکل بستگی داریم توی کردم سر چه موضوعیه میگیم انگیزه های بهترین حالتش دوستان گفتم به شما اینکه ما اگر دنبال منافع هر دو طرف باشیم تضاد نداشته باشیم دنبال برد برد باشیم بر بر بر بر. اگر تضاد تن... منافع داشته باشیم یعنی من می‌خوام که بالاخره کالای رو به قیمت بالایی به شما بفروشم یعنی من دارم میبرم شما داری میبازی. درسته چیکار کنم در واقع این منافع رو ندارم تضاد منافع دارم شما می‌رین ماشین بخری و شما میگه این ماشین 20 میلیون اگه ببین من 18 تومان بیشتر نمیدم اگه یه در چونه میزنیم چون 18 تومان میخری 18 تومان پرایدر میخری بگی ببین از اول تو من گفتن 18 تومان قبول کرد حتما یه داستانیه. یه داستان. ای خوشبختم 12 تا من. فکر کنم تا من. یعنی پشیمون هم میشی تو قرار. یعنی خیلی وقتا ما باید حواسمون باشه. ما توی مذاکرمون دنبال آدم‌هایی باشیم دنبال محل‌هایی باشیم، دنبال کسایی باشیم مهارت‌های ارتباطی اونجوری بتونیم متقاعدشون کنیم و نفوذ کنیم و آدم‌های منتقبی رو انتخاب کنیم وقتام نمیشه. تا جایی که میشه برای که بیتون دنبال یه رابطی برد برد باشید و بتونید که در واقع چیز را تو مرافع طرفه حفظ بکنه البته خیلی وقتا شما تو مذاکره باید این کار بکنی. حالا یه ببین فلانی قیمت اصلش اطلاعات داره دیگه قیمت اصل این حالا ببین هیش اشکالی هم این ماشین نداشته بشه رویاله قیمت این تدریس ببین کفش تو ایران انقدر من غابی میشم. مشابهمیم. با دانشم، با تجربم، با زمانی که میزارم، با وقتی که میزم، می‌دونیم غابی میاد. درسته؟ حالا چون میخوام رابطه بربر باشم یه بیم من ما است این ما سختیم مبلاب پرداختم. من یک کار میام پای. ولی ببینم دارم می بازم چکار میکنم؟ نمیپذیرم. ولی تو مذاکره یه شیبم به تو گفتم یه چیز کلیدی وجوده میگه پول رو نیز نظر ترک بکنیم. یعنی کاملا رابطه یه چیه؟ باخت باخته میگه پولی که رو میز هست رو چکار میکنیم؟ بهتره اگه تو بخوریمش حالت رابطه برد برد برای میز و پول روی میز ترک نمیکنیم یکی از اشتباهات مذاکره اینه که خیلی آدم رو تا رو انجام کرد معامله انجام نمیشه و بعد خونه هم میمونه چی میشه؟ عواشودی در واقع اون قرارداد ما میره با یه رغب دیگه بسته میشه درسته در صد که من میتونستم با یه مقدار انتحاف و یه رابطه بربود چکار کنم قرارداد رو در واقع انجام بدم و بعد این رابطه بربود برای اینکه آقای نوید خان و من مراجعه رو اون کنیم و باز هم معامله کنیم شون ماشینش رو بذارم و من هم برم اونجا خرید آبجا یا من ماشینم رو بذارم دنبال یه رابطه دراز مدتیم شون من میخوام یه کار با کیفیت با یه قیمت مناسب عصر جدید بدم برای اینکه این رابطه بلند مدت داشته باشم درسته چون برای دوره‌های بعدی بیام، برای سمینار بیام، برای کارگاه هایی که پرمانی کردم بیام درسته دنبال یه چی هم رابطه برد بردم از یه همه دوستان که مذاکره‌ی اصولی اینو حالا رابینز میگه. به طور کلی توی عرفش ما می‌گیم مذاکره‌ی اصولی و غیر اصولی. اصولیش همین رابطه برد برده و این برد با, با سات، جنگیدن، من از چند نفر شنگیدم برد بورد برده، می‌گن دو سر برد نهنم چیزی قضیه؟ دو سر؟ من نشدم تو دیده حالا کلم که مثل همون دست یازیدن، دست پیدا کردن، رسیدن ماست دیگه اون خیلی دیگه دست روی خب دوستان سودان من هست توی مزاکره سازمان اینجورم مسمیم سودان دامان میشید <تصفح> <آمان>. میدیم. اجازه اجازه ببینین، اگه من این بحث رو تموم کنم که چون میخوام برم رو بحث بعدیمون اونو بذارن برای آنسراک بعدی. سریع از مشق رد میشم. آید برک ببینید. رک. ببینید دوستان توی مذاکره تو سازمان ما اگر که بخوایم موفق بشیم نباید یک گر باشیم یعنی چی؟ یعنی که نباید روی همون اولین شما میگه بیس میلیون من هیچ رو حرف خودمون بمینم نه شما کتابیه، نه من کتابی یعنی یه تعهدی رو متقبل شدیم جفتمون روی این داریم چیکار میکنیم اصرار میکنیم یا یعنی که از تصمیم اولی که گرفتیم میگیم ببین من این ماشینه رو و 15 تومن بیشتر نمی رو همین 15 اول اصرار می‌کنم تا آخر به مزا. جواب نمیگیره. شما گفت 20 تومن بده. نهایتاش 2 تومن، 1 تومن پایین‌تر بده. پس خیلی وقت ما اصرارای بیجا می‌کنیم. یا رو تصمیمات اولیه نخوسته یا تعهداتی که داریم خیلی اصرار داریم. تو اطلاعاتی که می‌گیریم، این اطلاعات دوستان خیلی مهمه. ولی دنبال اطلاعات چین تو مذاکره قابل چی باشه؟ اصطناع اعتبار داشته باشه یعنی مطمئن باشیم نسبت به اون اطلاعات دیگه که بیش از حد اعتماد نکنیم دوستان خیلی وقتا ما تو ذهنمون یا اطلاعات یا آمارها یا چیزایی رو شنیدیم که واقعا خیلی قابل اعتماد نیست اعتماد به اون قسمتش بکنیم که مطمئن یعنی چی؟ یعنی در واقع ببینم نگاه من... بکنیم میگه که توی این یک نگری باید این نکاز رو حتما لحاظ بکنیم و اون مجموعه برد برد میگه بچه برد برده نباید بشه صفر باید چی باشه یک رابطه ای باشه که ما رو چکار کنه؟ به در واقع تضاد نرسونه منافع جفتمون رو در نظر بگیریم مجموعهش باید من رو به شما رو به خروجی مثبت برسونه برای دف... جفتمون چی داشته باشه؟ منفعت داشته باشه و بعد این تائینه چارچوبم هم همون باز دوباره میگه که باز اون نگرش و ذهنیت که شما داریم. اون رو 20 اسراء می‌کنه من 18 اسراء دارم می‌کنم ها واسه تو مارکت ایران ولی اینجوریه که مثلا 15 رو... مثلا میگه 15 بعد اون میگه مثلا 19 بعد ما 16 آره <تصح> <تصح> اگه ما اطلاعات درست داشته باشیم اون قالب چارچوبیه، اون اصرار ورزیدن تو تعهده ما اگه که بگیم که مثلا پراید 83 با این میریم نگاه می‌کنیم کیلومتر رو به یه مکانیک هم نشونش میدیم عش کفش در میان میگه موقع نایش بنگام یه بره بخوره او طرفم یه کمی بخوره چقدر میگه مثلا جا داره تا چقدر بگه یک میلیون دو میلیون از ی میلیون بگی من شما چیکار کنیم حاضر میگه میخوایم چونه بزنیم پس برنابراین خیلی وقت بودم دیگه ازون معامله میخریم و پشیمون میشیم دیگه پس گتون باشه ما در کل باید اطلاعات باش قابل باشه، جامعه باشه، قابل اعتماد باشه و سعی میکنیم که توی مذاکره هم و همه این که میگه یک سو نگیری نه باشه، اینکه بتونیم منافع خودمون و اونو طرف رو با هم ببینیم. برای اینکه بتونیم به روی رابط برد برد امرسه. درست؟ اگه طرف مقابل اینجوری نبینه چی، استاد؟ خب دیگه به رابط برد برد نمیرسه دیگه. اون وقت ما خودمون ضرر می‌کنیم اینجوری. جام؟ اون وقت ما خودمون ضرر می‌کنیم. این چرا دو تا اسفنیم؟ کا نه تام نشد. دو آره من کاملش کردم. دیدم اصلا ندر. تو دوستان تو این فایلی هم که براتون فرد... تو فایل من گرفتی سمیه نه چون نه نه. از بچهان. نه. نه. she mailed it چی بودی؟ اوه. آوه. A O E L. پاسپورت فرستادم که. دیدم برنامه آنهای برای تو دیروز برای همه تو فرست دادم بری, بری شده الان نازوزم من رو میگم یعنی اومده رسیب اگر لفت نه نفرست بسید من چیک کردم ولی چیزی برای نمیمونده بریش پیشم پیشم که میگم مثلا مینه ساعت هفت و اینا بسید من جلسه پیش رو هر دو تا جلسه کامل برای تو فرزم فقط یه دو تا اشکاری توی پاورپوینت هست قلط املایی و همین باکس یعنی اونو بعد از خطا که براتون اصلاح شدهشو می‌نویسم اصلاح فایل 23 می رو میشه الان یه زودی بیارم من اینا رو بنویسم 23 رو بنویسم من توضیحشو بدم فایلش براتون فرستادم حالا الان خیلی گیر ندید نقش بیگیه شخصیتی. دوستان تحقیقات میگه آقا اگه من خوام با آقای کاشن مذاکره کنم، تیپ شخصیتیشونو بدونم، خصوصیاتشونو بدونم، تو مذاکره به من کمک میکنه نظرتون چیه؟ بله، کمک بله، صد ببین تحقیقاتی که انجام شده میگه که ببین، لزوم من اینجوری نیست شما اگر خیلیشونو به بشناسی بهت کمک کنه. بهتر رو مفاد قرار بیشتر اشراف داشته باشی. ولی این شناخت کمک میکنه شعبانی هم همین نظرو داره. میگه حتما بهتون کمک میکنه روانشناسی شخصید ایشون مهتطلب ریاست طلبه تو مشتریا مدل انیگرام ای داریم پی درسته؟ اه ایشون اه اه دانشگره، دانش طلبه، هر تیپ شخصیتی که داشته باشه من تو اون مذاکره وقتی روانشناسیش می‌کنم، اگه عقب پیش رفتنش، بابا ولی امکانه بار باشه که آقای کاشان که مشتری پس بنابراین از نظر خود من کمک میکنه ولی کافی نیست, نیست. تحقیقاتم هم همینه نشونده بگه آقا جان میتونه این شناخته به شما کمک کنه ولی لزوما نمیتونه قرارداد رو فقط رو این ببرید که اگه ایشونو شناختم میتونم یک قرارداد خوب بدم مذاکره موفق داشته باشم اون مفاد قرارداد اون موضوعات و سرفصل‌هاست که در واقع میتونه با شناختی که ما از همدیگه اون پیدا میکنیم تو اون جلسه یا از قبل داریم ما رو چیکار کنه به یه خروجی مسعر نمیشه در مورد مثلا اثر اختلافات فرهنگیم براتون تیپ‌های مختلف اووردم دوستان همه تحقیقات علمی نشون میده که اختلاف فرهنگی اثر می‌ذاره یعنی اگه شما بدونی من ترکم، لورم، غزوینیم، مشهدیم، تحصیل می‌ذاریم مشهدی یه لهم خاصی دارن، اسرونی‌ها یه لهم دارن، درسته؟ توی بین الملل هم همین مزروعیه می‌گه ببینید، امریکایی‌ها آدم‌های بازی هستن، آدم‌های سخت‌گوری نیستن اتفاقه و اگر شما باهاشون یک کمی راه بیار اونا با شما راه میان بگه امریکای آمریکای یک کمی راقیگراتر هستند ها رو موضع خودشون امکان داره چی باشن؟ در واقع پا فشاری بکنند چینی ها آدمانی هستند که میگن آقا جام ما همینجوری میتونیم مذاکره ادبای پیدا بکنیم یعنی همینجوری با روی خوش با شما نه از مزش رو میان پایین، نه با شما موافقتی، ایشون رو موافقتی، کشش بیان تا بتونن به اون نتیجه منفعت خودشون رو کنن، برسن. میگه روسا کاملا آدم ها سخت برای همین براحتی از چیز خودشون، از اون خواسته های خودشون کوتاه نمیان. عرب احساساتی هم. و هست با و احساسات فردیشون تصمیم کرد و بعد هم تا... به محصه که احساساتشون درگیر بشه با شما شما خوشیشون بیا شما بتشه تا دلت به با شما چی میکنن؟ تخفیف میدن و با شما همراهی میکنن این نمونه هایی بود که براتون آوردن توی اسلایداتون حالا این اسلاید قویه رو دوستان گذاشته. بر پس بنابراین یادمون باشه که اختلافات فرهنگی چه قومیتی، یعنی چه ملی و چه بین ملاری حتماً چه مذاکره ما میتونه چکا کنه اسرار خودش رو بذاره، بفهمه خیلی ساده است. <تصفح> نه توی جای شخصیتی تو مذاکره، تو چه شرکتی ولی سیم کاریش نیست. ببینید، اگر از قبل بشناسی نبی، خب خیلی مهمه که شما بدونید ملیتش دلوم چی. اگر من ملیت، اگر سر، اینم کجا اگه که آدم سخبیری یا آدم اطلاع اف... نهتر چه که بهتون دارم یه شاخصت داره. حتی شما خیلی سؤال میپرسید اون در مورد موضوع، قرارداد، محصولی یا خدمت اطلاعات حیخان میگیری و خیلی جدی هستید نشون میده که مثلا دانش بید بنجاست. اگه تو شما نه، شما اصلاً اینو لازم ندیدین. یعنی من یه کالایی رو بخری، من مثلا اینو می‌خوای بخری، من اینم به شما می‌ده. بس شما نگاه کردن، می‌گید لازم ندید. از من یا یه یعنی مهتالت. این یه شاخصهایی رو داره ولی اون که شما باید بهش لحاظ بکنید از نوع رفتارش بهترین چیزش اینه که نگارش و درکش رو تشخیص بدید. چون همیشه شما اصلاً هیچ پیش‌زمینه‌ای ندید. نمی‌شه. اولین بارم. اولین بارید. خیلی یه چیزی به شما از زبان بدنش از فرصتی بهش بیدید صحبت کنه در مورد قرداد، بند بند قرداد با هم حق بهش مهلت بروز بدید هفت که میزنه شما با تهم فکرش ها شما میشید نوع تا یه حد میتونه کنه بذاره. بذارید نشستنش ای ای ای اینا ببینید شما وقتی یه فهمی خط اتوش داره پندونه قاچ میکنه، بعد بدون این آدم دیسپرین داره اگر احساس میکنین که محکم باطیانه بگیم این حالت یکم این ریاست طلبه چی مخوام بگم یعنی شما رو از موزه بالا دارد نگاه میکنم این چیزایی که یه مقدار با گفتن من فقط بگسم شما کمی نه، یکم من مطالعاتتون رو زیاد بکنی. یه کتاب کوچیک زبان بدن هست، کار که مثلا تو تیپ نشستن تو راه رفتن اینا رو به شما کنه با... شما میتونید تا یه حدی اون تحلیل قضا نه تحلیل داشته باشید ولی هرچی نیش فرصت بدید خودتون تو کمتر صحبت کنید بذارید اون بیشتر صحبت بکنید چکار میکنه؟ شما میگه خودش. شده. شما که دنبال یه یاروگاه خیلی خوب هستید بهترین کار که صحیح اطلاع در مورد خودتون ندید چون آدم ها نقش بازی کنند نگید من چی دوست دارم هر چی گفت چی مورد علاقه شماست؟ شما به چی چیزایی علاقه بندید؟ به طور نوع موزیک دوست هم چه موزیک سوال با, با سوال جواب بدهید؟ نه، نه با سوال که ناراهدم شد ولی این بیشتر رو باز کنید چون خیلی وقتا ما توی ارتباطاتمون حتی تو مذاکره هم داشتم دیگه من الان یه شرکتی هستم که شهر کوذرانی تو قطعات خودرو اینا مثلا به من گفتن گفتم ببین ما باید آدم وقتی وارد مذاکره میشیم چی بر که مثلا بهش در واقع نمایندگی بدیم این آدمه قلق میکنه من اینجوری من اونجوری من بلکرم اینجوری من مشاورم ببین چون میدونی که اینا دنبالی کسی هستن که اعتبار داشته باشه دیگه خب نه ببین. یه بحث خودشه مو باید اونجا اونا باید تشخیص داره که اضافه گویی میکنه اون داره شواف یا بچی چیزای سنجشیش یه یکمه خودشو میسنجن و خوب خب تو اسفاهای کیلو میشنستی حتی دوتا آدم معتبر رو بگی چه مده با باش کار کردی، از اون تو اطلاعات به ملکت کجاست؟ ملک سندش به نام خود تگیرم. ببینید سن... چیزای شاخص های کمی داریم و کیفی دیگه. کیفیش همون برداشته و تحلیل های شماست. ولی کمیش میتونه ابزارهای دیگهی باشه که به ما کمک کنه. من مخلی بخواب شما را استخدام کنم مصاحبه میکنم با شما. مصاحبه ساختاری دفته و او تستارم میگم. ولی دقیق چک میکنه. یعنی اینکه یه تست رو که به شما میگن چند تا چیز شخصیتی یا در واقع شما رو هم خودم هم برداشت رو دارم با اون ساختار یافته، سوالت ساختار درسته؟ چون دبه که قضاوت اشتباهی نکنم، تحلیل های درستی رو انجام بدن درست؟ آره شما باید یکمی مطالعاتتون رو زیاد کنید خیلی ولی... پیچیده شد و چیزایی <تصفيق> که بگیدید چرا؟ باید. باید. چی پیچیده شد؟ همین به دست آوردن اطلاعات از اون خیلی درست. پیچیده شما انسان پیچیده است نا شما شما برای دوست پیدا کردن سه سوت را بیفتی تو خیابان دوست پیدا نمی‌کنی. نه من خودم آدمی ام که به خیلی ظاهرش نگاه کنم، تو دو رفتارش، دوباره روش می‌نشستم براخود ببینم چه جوری غذا می‌خوره، چه جوری چای می‌نوشه، درسته؟ چی نگاه میکنه چی موزیکی گوش میکنه خونش کجاست؟ اینا چیزایی تو شما رو کمک میکنه دیگه. حالا نمیخوام بگم صرف خونش کجاست خیلی مهم میشه، ولی به هر حال با یکم تم فکریش، تم فرهنگیش، نوع پوشیش حاله پیچیده است توی مذاکره هم برای همه خیلی مذاکره کار سختیه آقای دکتر هیدری که در واقع نمبر 1 بحث های مذاکره است توی ایران تمام مذاکرات بین المللی در حوزه بیزینس ها بونگا ایشون انجام میده منو تمام خود سازی و فولاد اینا بحث های یهودی چند شبانه روز کارشون رو طول می جلسه خاطبه سخته واقعا کار آسانه نیست و یه چیزی هم به شما بگم آقای سلطانیان همین آزمون خطاهایی که می کنید می به شما کمک می کنید. یعنی خیلی وقتا و شکستهای ما ناکامیهای ما تجربه میشه برای معفقیت ها. فکر می کنید من خودم که همه مباحث مواحث داره بکرم هنوزم توی شناخت آدم اجتباه نمی کنم فقط دنبال این هستم سر می‌کنم تحلیلش نکنم و برای آه. این تحلیله چی کار می‌کنم؟ رابطه‌ی نزدیک دوستان، با آدم‌ها خیلی برقرار نمی‌کنم رابطه‌ی کاری برقرار می‌کنم ولی وارد زنی که احساساتم درگیر نشد چون اگر آدمی بود که با من نمی‌خون نلزو من بعد باشه چون اون تیفه به من نزدیک نبود به من آسیب نزنه برای همینم هم است که هرچی شما دایره شبکه ارتباطیت رو زیاد کنید ولی دویره ای چیزای شخصیتون روانت شخصیتون بچه بشه چون آسیب کمتری بهتون می‌رسه و هرچی با مرز همون که گفتم ببینید البته در که میگم پیچیده است راهکارهای ساده داره از کلمات مثبت بجا جا، تأثیر گذار، محترم شما وقتی این رفتارا رو بکنی آدما با شما نمی‌تونن خیلی قاطی بشن به راحتی نمی‌تونن بازیتون بدن به راحتی با شما شوخی کنند وقتی شما حریم داشته باشی و فقط محارم رو تختونت را بدی چه مشکل برات ایجاد میشه تو شرکت هم همینطوره مگر شما هر آدمی رو هرجا به تو آدرس شرکت بدید وارد شرکتت بکنید توی بیزنس‌های بزرگ متفاوته ها ولی همونجا هم کنترلی داره شما یه همین برای خودتون خواهد شدید روزونم محارم بچه زن و مرد قسط محارم منظورم فرد امینه فرد قابل اعتماده یادتون باشه تو, تو اعتمادم گفتم اون کسی که به شما اعتماد میکنه جایگاهش از اونی که شما رو دوست داره بالاتره. چون اون اعتمای چیا بود؟ صداقت، شایستگی، وفاداری، صوبات و روناسی اون آعتما را آیت شده در موردش، ولی بله؟ انسان یک موجود پیچیده است برای همینم هست که اولین جلسه قانون گفتیم گفتیم هر که با انسان سر کار داره چه چیزه چون خیلیه تقریبااً. و بعد قابل شما نویدخان 22 سال با من رفیقی همکاری. توی 22 و این سال آقای یک عکس عملی تو کار انجام میدم تو جلسه مذاکره رفتاری خودم نشون میدم به سمیر خانم که شما دو تا شاخص اصلا این هم آدمی بوده که من 24 سال باهاش دوست بودم 22 سال دوستا اینو می شناختم شخصیتش رو نگارشش در واقع انسان پیچیده است و همین چیزایی که شما میگید بنده که اینجا جوری شما واسه مداد تجربه کردم و کنم تا آخر عمرم خیلی ولی سعی کردم عزم ها اون دایره هر رو توی ارتباطاتم خیلی بزرگ کنم ولی حریم قائل بشم اون حریم باعث میشه من کمتر ببینم م? یعنی اگه با شما هم کار کنم، کار کنم و یه قرارداد صفت و صف حتما وکیلم نگاه میکنه به راحتی وارده با شما با اینکه چون فسر یا باید هستی قرارداد نمیخواییم نه نه من منظورم شما ها شما نگاه میکنم به نه ببینید من منظورم اینکه قراردادی که شما میخوای جمستون بفروشید من مثال که دارم میزنم منظورم خودم نیستم قراردادی که شما دارید برای ارائه خدمت دارید. شما هر کدومت یا ی کالهای رو دارید که دارید وارد میکنید و اینجا یا یه خدمتی رو دیده درسته هر قراردادی که دارید میبندید مشاوری که میگیرید مدیلی که استخدام می‌کنه. خیلی وقتا مدیلا به صورت چی میاد، آزمایشی اول میاد دیگه. ولی از همون اول باید بشون که سفت و سح با آدمو ببندید. دوستش ندید. پسرتون میاد. چون مخاط پسرتون وارد سیستم و بزینس و بکن. کاملا باید چارچوب باشه. دلیل که پسرتونه، نمیشه بی در و پیکر حقوق بهش بدید. یه حقوق عرفی داره. اضافه کاری بامس اضافه کاری داره. بهره‌وری بعد اضافه کاری بهره‌وری نشو سوء تفاهم نشین من دارم موضوعم. مثلا مثال که میذارم خودمو خیلی وقتا منظورم خود شماهای توی مذاکراتی که شخصی که دارید درسته من دارم میگم که این برای اینکه این فاصله حذف بشه یادتون باشه حریما رو رعایت کنید یکی از حریم‌هاش اینه که قراردادهایی رو ببندید کاملا بار حقوقی داره و وکلای شما مراکز بوده که چیکار کردن اونها رو مورد تایید قرار دادن. جانم. وجود این تناقضات رو شخصی به نام شهست سال زحمت کشته انجام داریم ما برای اینکه بفرگمی که, که خانم شعبانی چه شخصیت اخلاقی داره و راه نفوز من داره چیه هشت تیپ افراد خانون خانون هشت تیپ آقای داریم تو پزشکی به نام آناگیران مطور شده و این دوارو بودن دارم من الان که راه نفوس به قلب شما دادن هدیه است. بله یعنی شما شخصیتون مثلا تو انتقید اگه سرچ کنید شخصیت ها رو سرچ کنید بله یعنی شخصیت هم شعبانیشی هست بله هر افرادی رو که ما نگاه بکنیم در چه ای پشتون مشخص البته تو چهرهشون نه ما روی عملکرد رفتارشون رفت عمل زبانشون دوست. حرفایی که میزنن تم فکری که در واقع در موردش صحبت میکنن شما حتما الان آقای هاشمی از من دارید چون تو بحث‌های سه جلسه‌ای که با هم کردیم من یه مقدار مباحث ذهنی خودم رو های خودم رو نظرات خودم رو در حوزهایی که باشون صحبت گفتم شما الان از من یک برداشتی رو دارید مطمئن که با یه بار در طرف با دو ببینید اینا تیفیه ها بازم تیفیه ها صد درصد خیلی همه از خادوک گرفتن نه تیفیه. نه تیفیه نه تیفیه ولی ببینید این تیفیه یعنی اینجوری لزومانی نیست که شما چون میدونید که این شخصیت ها همه اون علمی هم که برای توی سازمان ها مطرح کرده سوداگر، باغگرها، برونگرا درونگرا اینا دوستان چیزایی که شما امکان داره به هستی به سمت درونگرایی بره، به هستی به سمت برونگرایی ولی تیپ شخصیتی تو بیشتر به سمت چیه؟ برونگرهایی، در مورد شعبانی ولی کاری هم درونگرایی میشه، موقعی که داره موقع که فکری پج نیانه است. ولی گرایشش به اون صرف چی... گفتم صفر و یکی اون چیزی هم که شما میگید مطلق نیست آقای مهندس این ده. یادتون باشید هیچ چیز مطلقی در مورد انسان وجود نداره بله شما میتونید بگید از این چیزی که دارم میبینم حالا همون برداشتی خود تو تبیده اون دوره که رفتید یا برداشتی که دارید بگید آره شبونی به نظر به دختر مهر تلبیه یا به نظر میاد که من میتونم برای نفوز در وجودش کادو بدم ولی در مورد شخصیت هم چیزی به شما بگم من بسیار آدم سختی هست ظاهر مهربونی که دارم برای شما خیلی قبول میکنم برای چه قبول میکنم من ببینید شما ببینید حدیه اصلا بارش نیست من همین الان قرار بودش که کادو به نوید بدم گفتش این فیلمه گفت کادای تولدت نوید باشه نوید بگید نه نمیخوام دستشو رو در ولی ولی دا ولی ولی اگر باقای ابنون تو خیابون که <ptimics> درم <من ورد> برمیشم <تصفح> <نمیده> به من کادا حتی کتاب بده ازش نمیگیرم بله اگر جایی که الان نشستین، شما جز دانشگیان من هستید، دانش پزیارم. کتابی رو با عنوان اینکه که من به یاد شما باشم یا احساس ما کتاب رو من نخوندم و میتونه برای من مفید باشه به من بده حتما ازت میگیرم چرا که نگیرم؟ مخلی. ولی شما تو خیابون به من هرچی بده امکان ندارد دستت بگیرم و بفکر فکر کنم این خصوصی در مورد فقط خاندان شعبانی ها باشه حتما در مورد همه خاندان که اینجا نشستن هم هست چون هدیه دادن چیزی هست که حس خوبی میده ببینید مثل لبخن میمونه تو تمام دنیا شما به هرکی لب میزنید دیگه اتا با در مزخری بعد ایش بپشتشو با شما با در مزخری چقدر خوشروه چون لبخن رو زیبا میکنه این بوحبت الاهیه هستیدش. این چیزی نیستش که حالا شما فکر کنید ما به شهرون لبقه هم خیلی خوشه خیلی معلومه همه ما خوشم بودم حالا مثلا تو اصول بزرگری شخصیت هست به نام شخصیت بهش میگن امداد اگر کنید با لحجه امداد ازش بارد موضوع کنید؟ امداد حمایتگر بگیم شخصیت حمایتگر وقتی شما طلب میکنید، به کمک شما خسته نموشید خدا